سوره انفطار هم از نظر موضوع گویا مکمل و متمم سوره تکویر است در سوره تکویر خواندیم همون طور که ستاره غروب میکند میره جای خودش قرار میگیره شما هم وقتی که از این دنیا رخصت بشید و از این دنیا خدا حافظی کنید و وداع بگوید مستقیم به اون جایی که برای شما تعیین شده در اونجا قرار میگیرید در سوره انفطار میفرماید و ما هم عنها بغائبین یعنی از اون محلی جایی که برایشون تعیین شده از اون جایی که برای هر یکی از انسان ها تعیین شده از جاییشون غائب نخواهند بود. همون جا حاضر خواهند بود و اونجا حضور خواهند داشت. در این سوره هم احوالی از قیامت بیان میشه ال سبیل ترقی نسبت به سوره تکویر الله می فرمد سممع ان فطرت وقتی که آسمان تکه تکه میشه شکافته میشه انفطار شکافته شدن و تکه تکه شدن را اونجا فرمود اذا سماء و کشتت اون پرده برداشت میشه اون پوستش برداشت میشه بعد از اون نوبت به چی انفطارت و اذا الكواکب انتصارت وقتی که ها یکی یکی میوفتت انتصار یک یک افتادن این بعد از سیه از اونجا فرمود اذا نجوم کدرت وقتی که ستارها بینور میشه بعد از بینور شدن و نور گرفته شدنشون یکی یکی می افتاد و اذا البحار و فجرت بعد از سجرت فرمود فجرت جاری میشه سجرت در واقع حرکت کردن است و فجرت جریان را میگن یا یعنی اینکه سجرت در گرفتن و آتش گرفتن که قبلا نعرض کردم و اذا القبور وقتی که قبرها زیر رو میشه چطور زیر رو میشه خاک روی قبر میرد ته قبر و جسد زیر قبر میاد سر قبر بالای قبر یعنی میاد زنده میشه انسان همه انسانها از قبرها بیرون آورده میشوند الله میفرمد علمت نفس ما قدمت و آخرت هر نفسی میدوند اون که تقدیم کرده و اون چیزی که تأخیر کرده یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که قبل از خودش فرستاده شما الان برای دنیا آخرتتون هر عمل نیکی انجام دادید قبلا او را فرستادید هر کسی عمل بدی انجام داده قبلا گویا او را فرستاده یکی مثلا صدقی میده اون را جلوتر برای آخرتش فرستاده یکی انسانی میکشد بعدا اون هم جلوتر در واقع فرستاده یکی که میخواد بمیرد پشت سر اخرت اینه یکی میگه بعد از من شما برای مسلمانان یک مسافرخانه درست کنید که مسافران بیاد اینجا همیشه استراحت بکنن این اخرت هست یکی دیگه میگه بعد از من فلان افراد را از بین ببرید، بکشید، این, ا... این هم اخرت است. یکی خوبی پشت سر میگذارد، یکی بدی پشت سر میگذارد. یکی چیز خوبی را پیشا پیش میفرستد، یکی چیز بدی را. لذا وقتی که انسان از قبر بلند میشه، میدوند چی چیزی جلوتر فرستادم، چی چیز پشت سر گذاشتم. علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر نفسی میداند آنچه که تقدیم کرده، پیشاپیش پیش فرستاده و آن چیزی که پشت سر گذاشته یا ای انسان ما غرک بربک الكریم الله تعالی بعد از اینکه این احوال وحشتناک قیامت را بیان فرمود حال انسان را خطاب میکند ای انسان با توجب اینکه این شرائط سخت را در پیش داری چه چی چیزی تو را غافل کرده؟ چه چیزی تو را از رب کریم این رب مهربان که با این لطف و مهربانی همه چیز را برایت بیان میکنه تا خودت را آماده بکنی تا اینکه به جهنم نیفتی تا اینکه موفقیت و سعادت همیشگی را کسب بکنی چرا از این رب کریم حرف شنوی نداری یا ایها الانسان ای انسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم چی چیزی تو را فریب داد نسبت به رب تو اون رب مهربان آن رب کریمی که الضی خلقک اون رب کریمی که تو را آفرید فسواک برابر آفرید فعدلک فعدلک یعنی همه آزاء تو را در همه آزاء تعادل ایجاد کرد برابری ایجاد کرد فی ای صورت ما شاء رکبک بعضی گفت عدلک یعنی صرفک الی ای صورت عدلک فی ای صورت یعنی الی ای صورت تو را برگردان به هر صورتی که خدا خودش خواست رکبک تو را ترکیب کرد. یعنی صورت زیبای بهتداد و به اون صورت زیبا خداوند تو را برگردان ولی اي ای انسان این همین لطف را نسبه به تو و راها را هم به تو نشان داد چرا یوم الدین را تکذیب میکنید چرا اون روزی که خداوند برای محاسبه تعیین کرده شما باورش نداری کلا بل تکذبون بالدین حقا که شما تکذیب میکنید روز جزا را یا یعنی اینکه کلا ردعیه باشد هرگز اون طور نیست که شما فکر میکنید اما شما تکذیب میکنید روز جزا در حالی که شما انسان ها غافلید که و ان علیکم لحافظین همان بر شما از سوی ما فرشتگانی که حافظ اعمال شما هستند تمام خوب و بد شما را می نویسند کاتبین این فرشتگان فرشتگان مکرمی هستند که کاتبین و نویسندگان هستند هر عملی که شما انجام بدید می نویسند یعلمون ما تفعلون میدونن شما چه میکنید هر چه شما انجام میدید اونها میدونن لذا بعد از این الله عزوجل می فرمای شما از دو حال خالی نیستید إن الأبرار لفي نعيم إن بشارة تَسْهَمَ عنا إنسان هاي نيك إنسان هاي أبرار در نعيم هستند در نعمت های پروردگار در بهشت خدا جای دارند و این الفجار لفی جحیم همانا فجار فصاق اونهایی که عمل می کنند اونهایی که در دنیا فساد و شرارت بپامی کنند اونها در جهنم قرار می گیرند یسلونها یوم الدین انها داخل می شوند در آن جهنم در روز جزا داخل می شوند و ما هم انها بغائبین انها از اون جهنم غائب نمی شون میرن قرار میگیرند کی میروند در روز دین اما بعدن خداوند میفرما میدونی روز دین چی هست و ما ادراک ما یوم الدین چه خبرداری تو که یوم الدین چی هست این استفام استفهام تحویلیه هست یعنی هول را ایجاد میکنه همین سوال هول ایجاد میکنه میدونی یوم الدین چیه خبرداری داری یوم الدین چیه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم الدين اون روزی هست که هیچ نفسی برای نفس دیگر مالکی چیزی نیست هیچ که نمیتونه پارتیت بشه هیچ که نمیتونه نجاتت بده اینجا اگر کسی می میکنه خب پشتش گرم میگه پدرم پول داره پول خرج میکنه منو نجات میده یا پدرم صاحب پست و مقام پارتی داره سفارش میکنه اما اونجا نه اونجا از این خبره نیست یوم لا تملک نفس لنفس شیئا هیچ نفسی برای هیچ نفسی مالک نیست اختیاری ندارد والامر یومئذ لله اما امر اختیار در اون روز فقط برای خدا است وقتی فقط برای خدا پس خدا را راضی کن الله عز وجل رزاری و تزرع کن